تو بله بله بله بله که ما در پیاله چیدو گفتیم و خندان با اشکرشم و نازم گفتیم هرگز نمیردان که دلش زنده شد عشق سبت هست بر جلیده دوام کنم که این روشن حافظ همه کار دنیا رو چطور کشید؟ با اساس عالم رو محتوی بر عشق و خلقت رو اصلا یه حدیثی هست مثلا اصلا من عرض که سودی یه اجازه حدیث برای چیز کارشون برای استنادشون یه مقدار حدیث دارم که روش استناد می‌کنم خیلی هم در بنده این که این حدیث ارتقا این باشه و سلسله صحتش درست باشه و اونا زمارنگ تو این خطا نیستن. یه حدیثی هست که حدیث قدسیه، حدیث قدسی یعنی حدیثی که پیغمبر از قول خدا نرم. حدیث نبوی یعنی از قول خود پیغمبره حدیث قدسی حدیثی که از قول خدا نرم. چه مثلا اون حدیث لولاك لما خلقت الافلاک که میگه باد که خدا و پیغمبر برغم که اگر تو نبودی من افلاک رو کاهتن چه این حدیث قدسی. یعنی از خدا نرم. همچنین که الان بگم که باز میشه تو همه کتاب های تو هم هست کن تو کن زد و احباب تو او رفت و خلق تو الخب و او رفت من گنج پنهانی بودم دوست داشتم که شناخته بشنیم خلایق رو خب کردم برای اینکه شناخته بشنیم اساس چیز به اصلاح دوست داشتن و شناخته شدن و دقیقا غزلی مثل در ازال پرترست تجلی تجلیل دمزد عشق پیدا شد آتش و همه آلم زد همین ترجمه حجیز کنتو کم زن مخدیم و احواق توان عورف میخواستم شناخته بشم و خلق توان خب میکردی عورف خب رو کردم که پانو بشنیم این اساس بزی کلمه عشق در قران نیامده و در حقیقت کلمه عشق در عربی به این معنی کمتر به کار به این معنی بیشتر هوای وارد به و هوای تو یعنی عاشق شد انی هوای تو یعنی من عاشق و هوا هم در قرآن به این معنی به معنی عشق نیامده تنها جایی که صحبت این واژه هست یک یه آیه که یه دیکی دو کلمه شد. همون دو کلمه هم قیلی مرد اسم قرار میگیره یوهب بهم و یوهب بونه اونها رو دوست دارد و اونها هم اون رو دوست دارد این این اساسه بعد بر این اساس اینا اساس هستی رو عشق میدونن که خود خاجم ده ها بار به این مطلب اشاره کرده از جمله اون بیت عاشق شود روزی کار جهان سراعیت ناخانده نقش م از کارگاه. هست. یه نقش محشود از کارگاه هستی این است که تو عشقو هستو کنی. و حقیقت قصیم این است که اگر کاری یه دفعه هست که عرض کردم که اگر کاری از روی عشق و بر سبیل عشق و به تحریک عشق شروع بشه کیفیت اون آدم در اون کار تحت نسبت با آدمی که تو را میاد و وارد این جریعا میشه اصلا اصلا قابل مقایسی به هیچ فرش نیست به این دلیل هست که میگه که هر کسی که دلش به عشق زنده شد هرگز نخواهد مرد. اشاره ای هم اون به اون پیوستن حق و رسیدن به غسال و رسیدن قبره به دریا و این مزمون که خیلی زیاد است این جان آریت که به حافظ سپور بوز دوزی رو خشبه بینم و تصمیم کنم اون. این که این جان ودیه الهی از بره و این مسائل و این که میگه هرگز نمیراد کسی که عاشق شد بلاخت دنبال عشقش میره به فسال میرسه و این مقصود هستیه بعد هم به هستی مطلب میپیبنده و ناور ثبت سبت هست جریده ی عالم دوام و این جریده رو یه فاعتها به یعنی روزنامه گرفتن یه مدتی که اتفاقا کلمه روزنامه هم خیلی قدیل میه از جمله در خود آفظم هست میدونید که توی اون غزل حت یا که بگرفت ماه از اون لیک به درد نیست راه از اون هم روی دوست دولت هست اونجا به ساو چهره و حاجت به خواهد کردار اهل سومه هم کرد میپرد این دو نامه من شد، سیاه از اون، باید که آبی به روزنامه اعمال ما پششان بطوان مگر سه حروف خروف روزنامه آن که از اسمشم پیداست، یعنی نوشته روز و اینا در دربار و در دستگاه های رسمی کسانی بودن که حوادث روز رو ثبت و الان که خود بنده بعد می‌گردم می‌بینم چه قفلت بزرگ می کردم چه بسیار صحنه‌های عجیب و غریب چه بسیار حوادث سهمگین چه بسیار مسائلی که فقط من تنها شاهدش بودم رو چون چاپ به شب بعد می‌برم ثبت نکردم اینو حواس پسنده و مینشستان ثبت کردن بعد از روی اون حوادث بوده است که این تاریخای یه سیستم تاریخ از از این سیستم تاریخ، از از این سیستم سیستم واقعاً نگاری بر حسب سال سال میگه بعد میگه در این سال فلان حادثه در فلان جا اتفاق اتفاقات فلان جا قحطی شد فلان کس فلان کس رو کشت بین فلان با فلان جنگ شد عطار میگه بعد میره می سال بعد این کار از روی همون جراید است این اون جریده الان جریده من تنها هم هست تجرد و این تنهایی که حافظ میفرماید که جریده رو که گذرگاه حیات تنگ است یعنی تنها جریده رو که گذرگاه آفیان تنگ است پیالگی که عمر عزیز بی بدل است ولی این روزنامه و اون جریده احداث صفحه است که جریده عالم دوام ها اون دفتر یا چه می‌ترا بیادارش یا اوراق روزانه‌ای است که حوادث رو در روش می نوشتن و اینجا حاجی تو محمود که شعرش همیشه بلنده جریدهش جریده عالم جریده که دوام ما در جریده عالم سب به هر حال کنم که ترسم که صرفهی نبرد روز باز نان حلال شیخ آب حرام ما اولا شیخ خب مثل که یه بار گفتم یه بار دیگه هم میگم دو سه بار دیگه هم بعد خواهم گفت شیخ به معنی پیر صوفیانی که حالا آخوند رو میگن شیخ یا روزخون رو میگن شیخ یا پیش رو میگن شیخ این تازه کلمه‌ی شیخ اصلا به معنی پیر است. شیخ و شاب در مقابلش با تشدید شیخ و شاب از شباب شیخ یعنی پیر، شاب یعنی جوان و معمولا تو شعر اینا شیخ و شاب با هم میاد بیار از آن می گل گلرنگ خونش جامی، جامعی رشت و اسد در دل گلاب انداز اون میگه که یال و کشتی شت شهاب داد، غریب و بلبل در جام شیخ خوشاوند بعد شیخی که معنی پیرمرد و بزرگتر و مرد سال کرده است مجازا به معنی رئیس القوم و هم به معنی رئیس قوم هم به کار میون که الان همه شما میدونید که اوایل عربستون اینا رئیسشون میگن شیخ و تمام شیخ کو به شیخ شدن تا که هستن اینم یه معنیشه، بعد در تصوف رهبر اولی، یعنی رع سهرم، پیر یک، بعد پیر زیر دستش شیخ، شویوخ، مشاهد. و این مشاهد هر کدوم یه خانقار رو اداره میکنن. ممکنه در یه گروزگاری ده تا شیخ، حال یک سلسله وجود داشته باشه. ولی قطف اون سلسله و پیر اون سلسله یکی بشتریست. به هر حال شیخ خونه. و نان حلال که میگه معلوم میشه میبینید این طنزایی که به تصوف میشه گفتن تا سابقه تازگی نداره از اولین کتاب تصوف که نوشته شده همون نالهشون از دست طوپیای درویش بلند بوده تا روزگار حافظ تا روزگار ما چنان که می ده. و اینجا این تنز آشکاره که این نون حلال <تصفح> اولا حلال یعنی از گفت که یارو وقتی که داره چیزی گیرش نیامده بود هی شرک می‌کرد بعد یکی رسید وقتش تو چیزی گیرد نمیده این شوکین همه چیه میکنی اون بالا معرفت داشته باشی میرونه نسلت خوش خواهر باید این حلال که میگه یعنی با هزار آهوگردونی رو هم میکنن که راست و ریزقا داشتن برای اون باید چیز کردن اینا رو از این طرف اون طرف ترتیباتی میدن اینا رو صوب میدن به ظاهرش اینه که بعد شکر احر نمیخوره، ارز کنم که حروم نمیخوره بگیش بلندی داره، همیشه اخلاق و عدب و اخواهد میزنه به حلال خوره ظاهرش ولی میگهت خیال نمیکنم که در روز بازخاص این نون حلال از آب حرام ما سرکه یعنی در عرض هم قراری بعد بترسم که صرفه نیبره یعنی قطعا صرفه نیمیبره درست مثل الان تو انگلیسی ها همین میگن میگه میترسم نبشه میترسم نابشه این یعنی نیست اونطور برای اینکه یه ذره ذهره این قاطعیته بگیرن میگه میترسم بترن نرسی یعنی آقا تا نمیسی و کتکش حساب ولی نمیگه اینا هم همکه. ترسم که صرفه ای نورد روز بازخواست نان حلال شیخ ز آب آد بعد بیت بعدی مستیر چشم شاهد دلبند ما خوش هست دان دوست پرده هم زمان ما شابیت این غزل و اون صنعت دائمی معروف مورد علاقه حافظ در این بیت هست که ایهام بشین ایهام یعنی به وهم افکندن به گمان افکندنی کسی و در شعر مراد این است که شاعر کلمه یا کلماتی به کار ببره یا حتی جملهای ای ببره که دو معنی یا بیشتر داشته باشه داشت. و همیشه کلماتی که معنی های متعدد دارن یه معنیش معنی شو معنی قریب نون وقتی میگن اولین چیزی که به ذهن آدم میاد اون خوراکی معریب اون معنی قریبش معانی دیگری اگه داشته باشه از قبیل درآمد، از قبیل منفعت و از قبیل حرف نه معنی بعید معنی بعید میشه ای هام از این هست که شاعر کلماتی که معانی مختلف داره معنی بعید داره و معنی قریب داره به کار ببره و مرادش معنی مثلا بعید باشه ولی ظاهرششون بودی که معنی قریبه و بالعکس و البته هر دوتا معنی ببره. این کار هنری خیلی چیزی خیلی مهمتر از اینکه بگه ثابتی برای از سیارم بیارن آب از باد و خاکم بیارن اینا شروعه بیارن ولی این صنعت خیلی رنبه هنری داره و الان من سعی می کنم که دونه دونه این مطالب رو ارز کنم اولا مستی یعنی مست صفت یه آخرشم یه مستری مستی،, مستی یعنی مست دیگر خیلی اسم مستری شد مستی به چشم شاهد دل ما شاهدم که دل یعنی دل یعنی مورد علاقه کسی دل آدم بهش بستگی داره حالا وقتی میگه مستی به چشم شاهد دل ما خوش از این دو معنی داره یکی اینکه چشم شاهد دلبند ما اگر مست باشه خیلی دل پذیره یعنی مستی برای هیچ آدمی لطفی نداره برای هیچ چیزی لطفی نداره بجز برای چشمش محشوب مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش یه معنیش یه معنی روی این به چشمه یعنی شاهد دلبند ما از مستی خوشش میاد در نظر او مستی خوش آینده. البته اینجا دیگه مستی معنی مستی آب و انگور نمیده یعنی مستی اش طبیعی است که معشوق دلش میخواد که عاشق مست سر از ناشناخته اش با ناشناخته عشق رو بشن. بنابراین یه معنیش اینه که چشم معشوق ما اگه مست بشه خیلی دلپذیره. یه معنی اینه که مستی به نظر معشوق ما دلپذیر میاد. میگم سن زان زانو پرده سپرده عند مستی زمان زمان صورت مؤدبانه‌تر در حیات افسار افسار معمولاً برای خر و شتر اینا میگن برای اصل لگام مثلا و بعد زمان در حقیقت فرمونه حالا فرمونه و فرمون قواریو دروشکه اون قسمه چرمی فرمون اتومبیل همون فرمونیه که و اون فرمون رو میگن زمان من میگه مستی به چشم شاهد که دو معنیشو رو گفتم زن رو سپرده به مستی زمام ما. یعنی فرمون ما رو، افثار ما رو دادن دست مست حالا اینجا باز دو تا معنی داریم یکی مراد این که ما بسته و مفتون چشم مست یاریم و به این دلیل زمام خودمون و اون چشم مست دومیش دو این که چون معشوق ما از مستی، مستی عشق خوششمیات، ما هم اختیار رو ندادیم دست مستیش، یعنی مستیش بنابراین این کلمه چشم و زمام اینجا و مستی دو سه تا معنی دارید و دو سه تا معنی از این بیت استخراج میشه مطب وزه یعنی مطب رویش اما خوشش. مستی به چشم شاهد دل بند ما خوش است، زان رو سکردن به مستی، زمان ما ای باد اگر به گلشن احباق زن ها ارزده بر جانان پیام نمون باد رو قرار دادن خیلی رسم در زبان فارسی از قدیمترین ادوات ها روزگاه انوزن باد رو پیغامرسان چیز میکنن بعد بعد خبرش رو به خوش من برسونه اینا خیلی راه, راه جمه میگه پیاما رو اگر اگر به گرچنه دوستان گذشتی این زنهار اینجا قیده، قید تحکیده زنهار گاهی اسمه، اگر اسم باشه به معنی امانه زنهار دادن یعنی امان دادن زنهار داشتن یعنی امان رو نگه داشتن زنهار خوردن یعنی امان رو شکستن و نامردی کردن و زیر تحمیلی که دادن زدن زنهاردار، زنهارخواه اینا همه ببینی امان و تحمیل ده. و زنهاری یعنی پناهندی کسی که در تحت تحمیل در زیر پناه کسی است. اینا هست اون وقت گاهی این زنهار و صورت بیت برای تنبیه و تحکید برای تاکید مثلا اینجا یعنی حتماً زن هات یعنی حتماً بر تو هات که یا ما رو به جانگیه و زن هات برای تنبیه اینی که میگه مثلا می‌خوای سن هات برید برو ولی زن هار گزار تو کافه آقا جعفری این گید تنبیه شه چون گیر میاد آقا جعفری ای باد اگر به گرشن احباب بذاری زمهار ارزده برای جانان پیام ما پیامش چیه؟ او نام ما زیاد به عمدا چه میبری؟ برای چی همدن نام من از یاد میبری؟ روزی خواهد رسید که تو هرگز از من نام نبری او نام ما زیاد به عمدا چه میبری؟ خود آیدان که یا نباشد اینجا هستش در نسخه مرمو مکان دارید و نباشد بیت هشتم از که بیت هشتم بله یکتا دو, دو سه و چهار و هفت نسخه یاد نیاریه، هفت نسخه هم یاد نباشد، تحقیقا، دو تش. و درست مصافیان محروم خانداری نباشد و اخت کردی، به جای یاد نیاری خود آیا نب... البته یاد نیاری، علت شاید علتی هم اینه یاد نیاری در حقیقت نوعی یا انتقاد مشروبه، خواهد یا سر گرم بشی، چه بشیر؟ چه بشیر؟ ما یا اصلا حتی اشاره دوتایی که بمیری که ما یاد بمیری. ولی یاد نباشد زنام ما بهتره از این جهات میگه که روزی خواهد روزی که یاد ما اصلا در میون نباشه. این کار مربوط خودشه. حالا اگر که این هست که بره این هستی بمیره یا هر هست خود شاعر به خودش میگه بنابراین یاد نباشد بهتر تا یاد نیادی برای اینکه اون بوشه یه چیز رو نسبت به طرف گفتگو و نسبت به عاشوق او یاد ما زیاد چه همدا باز چه استقام انگاری یکی چنده نام منو امدا از یاد نباشد خود آیدان که یاد نباشد زنا حافظ دیده دانه اشکی همین پشان باشد که مرد وست کنند قصد دام ما. باز اینجا یه تعریض کتوری داریم که اصل مطلب خب دانه برای سید می رزن. سید رو تو رسید دانهی که دام دیرش پنانه می در محل دام می و این کار عادی جاری بوده در این حال سید یه نوع مکش و یه نوع نامردی داره اولا دوم این که به همین دلیل مسئله سید اولا که کراحت داره و سیاد بیدن شکایچگری اصلا کار است در بین و بعد کارای عوام و مریب تراشی و مسائل رو هم خیلی تشبیح کردن به همین سیم کردن و خب رو در دام آوردن و پدرشون در آوردن به همین دلیل در عین حال که که خب هم عشقی شاید مرغ وصل در دام تو بیاد بی تحریز و بی کنایه نسبت به کار اهل تصف نیست که کارشون همون دانه افشاندن و دام زیر دانه پنهان کردن و مرغ رو به چند بوده و این رو حافظ دوست داشت حافظ دیده دانه عشقی همی فشان که مرغ بس کند قصد دام دریای احصار فلک و کشتی حلال هستن غرق هم قرق نعمت قوام ما این حاجی قوام رو بنده هم صحبت شد قوامتی حسنه و تمغاچی، تمغا نوع این مالیات بوده مالیات جنسی، مثل راه دادیه نه که میگرفتن مهر صرخی بوده زاهره مجل اخراج، مجل میزدن روی بسته ها و یک بولی دریافت میکردن که ذر تمغا بشنید تمغاچی اون مهردار بوده و به بر سوید تس... توسع اون بست بوده کل نام گفتن که وزیر شیخ ابو اسحاق بوده و قبل از شیخ ابو اصحاق گفتن که در گذشته چند ماهی پیش از دستگیری شیخ ابو اصحاق بسیار آدم خیلی خیلی آدم دستانگواز خوب چیزی چیزی از محافظ خصوصیتی بسیار هم داشته و پیداست از این وصلی که حافظ ازش که نعمتش دریای افزار فلک و کشتی حلا رو غرف کرده یعنی خیرش به خاص می‌رسید و همه مردم از وجود او مستفید و منتقی می‌شود و همین‌طور هم بوده. چند نکته یکی برمیاد یکی این است که این غزل از غزل‌های دوره جوانی خاجه است برای خاطر که ابو اسحاق اولین پادشاهی بود که در دوران حافظ، در دوران شاعری حافظش اسم برده حافظ و مدت کوتاهی یعنی هم بیشتر در اوان جوانی خاجه چون چیز نداشت و بعد به دست مبالدین محمد مدفتری شرفته شد بیشتر عمر خاجه بیشتر عمر دوران شاعری خاجه در اونت 24-5 سالش درداره شاخشوجاق بذاشتی و به همین دلهم شاه شاخشوجاق خیلی زیاد غزاله که به کنایه یا به تصریح اسم شاخشوجاق درش هست خیلی زیاد و مال عبو اسحاق کمه یه چندهایی بیشتر نیز که اون مرسی درجه یکشه عرض کنم که بیلیان بختری یکم که خوران حافظ 350 شامین قضا واقع بود در مرثیه ابو اسحاق و عرض کردم این اشعاری دوره جوونیشه بنابرین اگه آدم بخواد توقعه مندی کنه یکی از یکی از مدارک که هرچند نشانه هایی که وجود داره همینه که شعری که برای قوام الدین حسن گفته در دوره پیش از مرگ ابو اسحاق پیش اما دریای اخزار فلک یکی از چیزهایی که شوهر خانوما عقیدی دارن که مردار رنگ نمی رنگ نمی و رنگار با هم اشتباه میکنم و معتقدن که خودشون خوب میتونن انصافن شد راستن میگن برای اینکه اونا بیشتر در اون کار وقت سرد میکنن تربیترن و طبعا تربیت بیشتری میدین برای این کار. اما نه اینکه همه این مردم با کسی که تاهم کارش با رنگه طبعا رنگها رو خوب میشه احیانا از خانمان بتر میشه ولی شعرها نویسن دیگه اما چیز چیز است که هیچ در این چیز دقت نداشتند توسط عجیبی به کار بوده اینجا میگه فلک میگه دریای اخسر دریای سبز همه نیست مزرهای سبز فلک دیدم و داس منو یادم از کشته سبز و آبی رو خاجه اصلا چیز نداره البته در شعر هیچ اشکالی نداره عیفی نیست که بشه که افته بشه شعر. خودش باید زیبا باشه آهنگش باید زیبا باشه هیچ شاعر نه مورخ نه لغویه نه نمیتونه دستور نویزه هیچ شاعر شاعر هر میگه هیچ اشکال هم نداره تنها شرطش میگه خوش آده داشته بست اما این, این توجه ه سعدی توی اون سیباچه گردستانش میگه شب را به بوستان با یکی از بوستان اتفاق مفید افتاد موضوعی خوش و برنم و در هم گفتی خورده مینا بر خاکش ریخده و عبد سرگی از تاکش آقود اولا که حالا شبیه ای چطوری خوشه انگور رو تراک بوده یک به سرگی ها یعنی محصولات باره و پایزه و همه اینا توی این باقوده با خاطر سعدی است. و این باق خاطر و تمام شهرام همینطوره با که بس میکنن بستانی که بس میکنن یا خونه که بس میکنن تو ذهن خودشونه اونی که دلشون میخواد اون باشه نه نمیگر عالم خارج هست حالا اینکه هیچ شیرازی ها همشون میدونن که مینا رنگه و میناکاری که جز کارای شیرازه که روی طلا و میناکاری میونن مینا آبی و سعدی چمنزار سبز رو میگه خورده و چمن رو خیلی به مینا تشبیه این توسط در رنگ و اینا که همین یکی دو مورد و مربوطه به همین یکی دو رنگ هم نیست مربوطه بسیار رنگ های دیگر هم هست این خیرمز و هم همه رو حض کنند به میکنن ولی به هجهت این هست میگه دریا یا اخذر فلک و کشتی حلال هستند غرق نعمت حاجی قوام که قوام باید قوام بخونم صحیحش بلی خب یه حالا قبام میگن ما میگیم ولی درستش قیمان و هاجی هم ببینید از کی این کلمه در حقیقت فارسی شده برای اینکه صحیح این کلمه حاجه چون حج ده یه حس دوتا جیم حجه یه حج اسم فعالش میشه حاجه که این دوتا جیم در هم اطقام میشه میشه حاج اقلل هاج و الامار مینوشتن دارن آن ها رو در دوره قاجار و طرهانی بودشت اونها اون موندن اغلل هاج و هاج درسته الانم بخواد شما بنویسید اگه بخواد در قید درست نوشتن تون باشید باید بنیسید هاج حسن هاج حسین حاجی درست نیست از نظر صرف عربی از نظر لغت خودش ولی وقتی آمده در فارسی اولا تشدیدش افتاده شده هاج بعدم یای نسبتا آمده و این در در گفتار خوصه و استادان بزرگ هست سعدی میگه از من بگوی هاجی مردم گزای را پوپوستین خلق و آزار میدارد هاجی تو نیستی چطور است از برای آن بیچاره خار میخورد و بار بذارد سعدی تنها نیست ناصر خسروف سیصد سال پیش از سعدی از روز سال چهار و پنجا میگه هاجیان آمدند با تحزیم بنابراین کلونی هاجی و همین بعد به صورت تصرف شده در فارسی با یای نسبت از خیلی قدیم بوده و همیه جا هم نیست که حاجی قوام حافظ میاره توی اون یه قدعه یه دیگری هم داره در این نعمت بدانت خوشدلی و بی حرام قدعه هست اونجا میگه که خلاصه میزوانشی جهان افروز چون آجی قوام و همینه باز اون اون استاد نمیتونه یه ملکی باشه یعنی ای <تصفح> حاجی من نه نه نه اون چی جای زمیره اون ضمیر مال عربی هست مال فارسی حاجی یعنی, یعنی کسی که رفته هاجی وای نیست بعد فرض کنم که اون قوام دینی که گفتم که به خاطر خار کشتنش اون یکی بود که اون قصیده در ساخته قوام دینی محمد بن علی قوام دولت و دنیا محمد بن علی که میده از چهره فر یزدانی وزیر شاه شدا بوده او هم خیلی محافظ مربوط بوده و دوستی زیاد داشتن بسیار آدم خوبی هم بوده خیلی ولی متاسفانه شاه شدا در اواخر دوران سردنش تصمید بود بعض خیلی بدی شدیدی میکشن و اون چیز آنکه که رخصار تراب رنگ گل و نسرین داد سفر آرام به منه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 آخرش هست در کف قصده دوران دل حافظ خون شد در فراغ روح حتی خاج قوان بزید این این مرسی قواندین محمد بن علی وزیر شاه شجا که تا حواخه دوری شاه شجا یک تا حواخه عمر خاجه نبیوند برای که بعد از شاه شجا دیگه اون فترت های دوری شاه منصور زیم راویدین و شاه یعنی ها و در مرافق این ها و یا رو میبینه خاجه ولی دیگه اواخر آن او بشه کنم ارز کنم که بنابراین این, این غزل چیز آن که رخصارت دوران رنگی بلن از چیز داد غزل دوران پیری خود و باید کسی که کار میکنه روی حافظ یک یکی اینا رو یه دیوان داشته باشه یا فیش داشته باشه و دونه دونه اینا رو عنوانش مطلع غزل بینیسه اون فیش یا اون دیوانی که یاد میکنه بعد به هر نقطه ای از اون قبیل که بر میخوره این یکیگی یکی کنار اون یادداشت کنه این یاد داشتنه فقط بعد یه مدت مدیدیست که یه چیزی از آب در میاد قیللا جستگریفت پراکنده یک کلمه در جمعه که اون این چیزی نمیشه بعد که اینکه جمع شد یه چیز قابلی میشه ما یه دفعه میلیم که مثلا 486 که جمع کردیم تا یه همچین دست شعر، تا قزل رو اون تاریخ‌های تقریبیش دونستیم. مثلا و و دو یا مثلا نوع غزل اون مشخصه یا شاهن نزول بسیاری از این غزلا رو از بوشهر کنار تونستیم شده هست. اینا کارهایی هست که به مرور صورت می‌گیره و به هیچ وجه کاری که یه دور 25 میادن بتونه انجام بده نیست، اصلا امکانش نیست. نه اینکه فکر کنه من شش ماه می‌شینم هر چه از می‌ریزم دورم و فقط کاری که درست می نشه این جز به مروب و جز با مدااقمت و دنبال کردن کار انجام یا است عوض کنم که در یا یا اکثر فلک و تشتی هلال هستن غرق نعمت حاجی قوام ما اینجا یک نکته بگم اوین است که تشبی آسمان تا ماه که شبای ماه نو توش گفته تا که شبای آخر برعکس پشت روش یعنی از اون طرف روشن ماه نیمه و بعد پر میشه و بعد از اون همون طرفی که از اول روشن شده از همون طرف تاریخ میشه شبای آخر ماه به عکس چیز شبای اول ماه توش گفته و این را اولین مار عبدالله هم معتز یک روزم هم خلیفه شد خلیفه زاده بود جو جو خانواده خلیفه های عباسی بود و یک روزم هم خلیفه شد و برگرفتم و برگرفتم و برگرفتم و برگرفت جوزیات کار چیزم نیست عبدالله عبدالله موتز اول بار آسمان رو به دریا و ماه رو به کشتی تشبیح میکنه و یه شاعری که میشنبه این رو بهش میکن دین شه چطوره شاعر چاله مثل من گوشنه بود و هشتشکی ر یه که والا خیلی خوب شعریه ولی این شعر باید مال آدمی باشه که اهل تنها و اهل نشاط و این عرفاز رو میکنه و سواق پایغ کنه این از مستضعفینی مثل بنده گفتن این شعر بر نمیاد و با هر واقع بوده، واقعا اینجوری هر حال این دریا و کشتی این ترتیب به حافظ هم وارد بوده به همه این مزامین شعر عربوین این است که یا شهید، هر به معنیش شهادت درده و هم به معنی حضور داشتن یه در یه جایی ولی این که این بار زیبایی و بار عشق و این مسائل چکلی که دو که نگذاشته کشیده، و از کی من الان چیز ندارم که دنبال کنم کرد و بنده نمی کنم استاد از شهر ممکن نگه برای شیره می کنم شیره فکر نمی کنم فکر نمی کنم اون شرد فرد رازم اگر گرفته شده باشه تازه زید فرد رازم معمولاً ازش اسم خایل نمی مثلاً حسنه یعنی زیباست ازش حاسم ندید حسن دارید صفت مشبهه دارید نده من آده از از اتفاق به این صورت اون چیزه اون ارزی آخر وشتی من می شاهده به هر صورت من کمال نمیکنم که از شینی بشه. باید نگاه کنم. البته اینا با حدس و کاری کار ما اینجا اونجایش که به حدس و گیاسه باید بفهمم با این حدس گمان گمان بنده یا گمان خودم هست. واگوش باید با سند و مدرک باشه. اگه سند نداشته باشه جدی نمیذارم. و من پرهیز میکنم از این که که این چیزی که قطعی نداره این چه خدمتتون بگم؟, بگم،, بگم،, بگم،, بگم. این هست که این شاهد رو بذاری هم میکنم و بند رو بند. هم, هم ریشه شو می بینم، هم تقدیب شو می هم عربی شو می هم فارسی شو می هم موارد استعمالش در حافظ می هم در شعرهای قدیمتر رو قدیمتر می بینم تا چهیی که می میتونم دنبالش برم به شاهد و همین معنی سکیده هست. بشین یک چیزی هر من کنم که چیز کرده بودم که این هم که عبدیه بود تو در کمان انداخت طبعا این قضا که از از خیلی خوشم این و از حفظ داشتم از قضا بود این رو بودیم که بعد من حضی زنی بهش حالا یکی از جوان مردان قصداخ رو از کنه من می که آقای سفند بلدن آقای هم بلدن خوان بالادن بخونن ولی به نا تو آورند. چه که عبدول شک تو در جهان انداز. که متوجه شد. آ چقا که تو در من البته از مسئول و باید بشه مقدمی است که مسئول و خون کمی شه روی افروی در کمان انداخت به قصد جان من زار نادوان انداخت بهتر نه بود نقشه که رنگ الفت بود رنگ الفت بود نه بود نقشه دو که رنگ الفت بود اینجا ما کار درست کردن اون همینه کسی ارون که غلط که نمیخونه اونجا اشکال و مطلب سر این است که تکیه کجا باشه وقت کجا باشه و کجا باشه همین نبود نقش دو عالم که رنگ هلفت بود زمانه طرق محبت نه این زمان ما اینجا اکسش داریم نبود رنگ دو عالم که نقش دو هلفت نظیر احمده ولی خریب خریب بل به یک کرشمه که نرگست به خود فروشی کرد ولی به چشم تو ست فکره در جهان اندار توباره باز این هم همزوره به یک کرشم اون باید مقدم و ندیجه به یک کرشمه که نرگز به خود فروشی کرد بری به چشم تو ست فکره در جهان شراب خورده و خوی کرده می به چمن که آب روی تو آتش در ارقوان ع... اندار به بعضگاه چمن دوش مست زشتام. و از دهان تو هم چه در گمان انداو. و نفشه طره مفتول خود گره میزد سباه کالت دروف تو در میان انداو. ز شرمان که به روی تو نسبتش کردم سمن به دست سباه خاک در دهان اندار این هم همون هم جمعه که, که به روی تو نسبتش کردم من به دست صبح خواب در دهان آن من از برع میو مصیب ندیدم این زمین پیش هوای مبعچلانم در این و آن اندام با آب دنبال دنبال همین موقعط باونی هست بعد توی آن آخر میگه که فکر کنم دنباله داره چون چون با آب نه از, از قبل است من از برع میو مصیب ندیدم این راو بیموخ هم در این و آن انداد. کنون به آب یعنی در نتیجه اون بازی کنون به آب می لعل خرغمی کنون به آب می لعل خرقه می شویم نصیبه ازل از خود نمیتوان انداد مگر گشایش حافظ در این خرابی بود که بخشش از که بخشش ازلش در می موغان انداد جهان به کام من اکنون شود دور زمان مرا به بندگی خواهجه جهان اندار خیلی ممنون اولا این استقبال از یه غزل بسیار قشنگ سنتی. بعد از کنم که یه همون غزل یک دمست و نظر بعد نمیتونم این دیگه غزاله چه فتنه بود که حسن تو در جهان انداخ که یک دم از تو نظر بد نمیتوان انداخ بلا یه غمزه یه بنا مهربان از چه خون که در دل یارام مهربان انداخ از عقل و آن روز بر کران ماندم که روزگار حدیث تو در میان انداخ این کران میان چقدر پشنگ اقل و روز بر روز برکران موندم که روزگار حدیث تو در میان اندار نه باغ ما نه دو بستان که سر بغامت تو برست و بلبله در باغ و بستان اندار تو دوستی کن از دیده مفکنم زنها که دشمنم برای تو در زبان اندار به چشنها تو قسم به چشنها تو میکان چشم تو برگیدن دریخ باه بر ماه آسمان انداخ همین حکایت روزی به دوستان برسد که سعدی از په جانان برفت و جان ندن استقبال خواجه از خذر سعدی بعد از چیزش هم سباه حکایت زرفیت رو درگیان انداخ آشکار در شیخ عجلی و البته این روش کد حافظ داره فرق صدیب با حافظ این است که شعر صدیب مثل آب زلال مثل آب خوردن میذارید خورد خورد خورد خورد, خورد میتواخد شعر حافظ میادوریست که اگر هر کدوم از عیزای کچیکشو ازشو درشو اشتوجه نکنی باختید یعنی خیلی خیلی با تعمل و با تامل و دقتو یه غزلش هم میتونه نواد. تو تا غزلش بیشتر نواد خون باقی شد یه بونیه ذهنی آدم نمی‌رسه که درست خاطه پیدا بکنه به محیط غزل و درک بکنه همه زیباییشون چونواد بزنه به یه وقت. که 10 تا غزلش خیلی خوب سر هم میشه خون و زبونش از فرد سادگی اصلا حیرت انگیز است. و اینکه درست لغات فققال و چفال و حلبی ساز و ای نه میذاره پلو هم و از بینیم که ستو کلمه رو بزارفل هم کسی که از, از خواب صناعت باشه می‌تنمی ای که این کار استادی این ستو کلمه رو اون گرشت کنم که اینجا خاجه جهان یکی از وزرهای دورانه حافظه منتنه وزیر خیلی معروفی که باش رابطه زیاد داشته و آصف اغلب کتابش می‌کنه جلال الدین تورانشاه دارید تورانشاه که وزیر شاه شجاع بود و سالیان زیراز و گوی تا به نظرم سال سالم من به گروه بود و جون وزیر تو من پتمان بازرگی سل سالم به گروه بود کشت کم یعنی دیگه تاریک ارز کنم که نبورد در حال نبورد نه نه کار شاشوچه چیز نشدن که با اون خیلی سعیمی بود و خوب بود و شاید به همین گلیل هم گلک شکندتر هم برحاد اون رو بیشتر خیلی حافظ اشاره داره اون چیز بدون شک اون روزه خلده بر این خلبت دربیشانه از ماهی محتشمی خدمت دربیشانه از مده جلدی توران شد در میگه که ما کمال دین عبول وفا که کمال دولت دبلت و باید وزیر چیزی بوده باشه اصلا ناشناسه باشه. شاید بعد که مداره که پیدا اسمش شناخته نیست و خاجه میگه بهش حافظ دیگران هم هستن چیز رو که سریحاً ای خاج از عجایب روزگان این است که تورانشاه هم این از یه نوع تلس بوده تورانشاه دو نفره در طوری حافظ یکی که بیشتر طرف توجه خاجه بوده اکثر مداره او همین جلالتین تورانشاه که مدتی هم زندانش که خارج و عرض کردم قصده ماجرا شد زندان در یه مرد دیگری بوده خودبدین تهمتن که پادشاه جزایر هرموز و جزایر خلیج فارس بوده و این هرموز هم هیچ با هرموز ربطی نداره هرموز صورت دیگری از خرموج هرموز و هرموز با خواب ولی عباشم شده هرموز به مناسبه چه واحد مهم که اسم چیز هست ولی هیچ ربطی این هرموز با اون هرموز نداره گفت این حسن تا آن حسن فرقیز شد ارز کنه که اون شو گید که پادشاه پادشاه بهر بحر بهش پایه ناز بلند از تو جهانگیر به تا کند ها شک بحر تهان پردوهر هم همین قطبه دین این پسری داشته رو هم تورانشاه به این تورانشاه یه هماسه هم در همون روزگار ساخته که متاسمان نسخهش نسخه هم تینه او هم محافظ در راه اثار شیست و باز موجب به هم مثل قوامتین اینا اونجوری میشه یه خمی که ابروی شوخ دو در کمان انداخ به قصد جان من زار ناقوان این باز از چاشنی عرفان داره این یعنی روز اولی که نقش ابروی محشور رو کردن و عبروی معشوق و خمیده و کمانی تصویر کردن برای سید دل من. کمی که عبروی شوق تو در کمان انداخت به قصد جان من زار ناتوان انداخت برای اینکه آدم هم زار ناتوان و حسیر حشقست و حسیر قواموست و حسیر توی این نسخه من بلافاصله بیده بعد معلوم دو که اندری گذاشته داشته شعاب و خویی کرده کی شد به چمند؟ آو برون تو آو تشت در ارقوان انداخت ارقوان رو که رفقالا خود دیدن از گلهای خیلی خیلی پیشاهنگ پهاره و درخت داره، درختشم از کام درخت درخت که دانه های کل ارقوان یه چیزی سپون چشم و اندازه و قبل از اینکه برگ بده قبل از اینکه برگش میشه این گلش میاد گلی کچکه خیلی زیاد گل داره و بعد این گل میریزه زمین رو سرخ میکنه ارغوان رویده و درکه خزراف و چمن عرض کنم که اون وقت بعد تازه با پیه چیز میاد و عرقبان رو و آتش رو اینا خیلی و حرفسار معشوق شبیل کردن زیاد اون رنگی و هم رام ارغوانی گرفتن برای که سرخ خاص سرخی که متمایل به بنفشی است در نهایت به بنفش خو کرده یعنی عرق کرده شراب کرده و خو کرده در در حالت جمهوری حالا آره فکر کنید از که می پیرمرد جو روی اینا چیزی نمیده و یا خراب یا اثر نمیکنه یا وقت خرابشون ولی نشاطی چیزی کسی ازش نمیبینه درست به همین دلیل دنبالش نره ولی در جوانی حالت دیگری داره در جوانی همه چیز ساز طرب میزنه و کافی که یه جا مادم بخوره و رنگ رخصارش سرخ بشه و حالش بود بشه و بر وجودش رخمه کنه و عالم دیگه در نظرش ناچیز بیاده. هم جوان بود تم شعب و خوی کرده کی شدی به چمن؟ آب روی تو آتش در قوانند آب آب یک معنیش رنگ چهره هست و کلمه سهره به سر رستم سهر صورت دیگه از کلمه سرخ صحر. سهراب یعنی دارای رنگ چهره سرخ و در بعضی نسخه ها از جمله در کتاب و عبدالجلیل عبدالجلید رازی اسم پسر رستم رو میگه صرخاب، بستم و صرخاب کاملا چیزه، کاملا صورت دیگریست از همین اسم، این تحصیل اون درست و تصادفاً این دو وسیله یا دو قلم وسایل آرایش خانمان که دو قلم از هفت قلم البته یکی صرخابه و یکی سفیده آبینایش بودم آب توش نده از قدیم الایام نداشته یا پنبه بوده و یا قهوه بوده و یا پودر بوده و یا بالاخره یا چیزی بوده نمیشی بوده برعج چیزی که نداشتهوش آب معنیش این است که ماده ای که رنگ چهره رو سرخ میکنه و ماده ای که رنگ چهره رو سفید میکنه سرخ آب و پس آب یعنی رنگ چهره الان هم آب و رنگ میگیم اون انگاز خوش رنگ آب رو معنی رنگ چهره میگیم و این یکی از معنی‌ها برای دیدن 16 معنی دیگه از هی کم به آب بردن اونم هیچی 15 معنی دیگه اون رو جورد داری اونجا هست از جمله مثلا مقدار بسیار نازوکی از قلیز گرانبه هایی روی به الکتریکی الیکتریکیان روی قلیزی آب دادن آب تلا دادن، آب, دادن آب نفت دادن آب به معنی آب رو مثلا هرچند بردی آبم هرچند بردی آبم روی از درت نت آب. جوقاصبی گستر که از متکید زمان است همجون هست و معنی های متعدد داره و از من بشنوید در موقعی که اگه واقعا میخواهید کار بکنید واقعا میخواهید کار جدی بکنید یکی از چیزایی که هیچ وقت از دم تو نوبت بروشه فرنگی فرنگی رو فرنگ و هرگز به حدس خودتون و زنه خودتون اعتماد نکنید تا وقتی ارز کنم که شراب پرده و خوی کرده کی شدی به چمن که این کرش روش که بیانیه که تحلیل علت علت میده که تو کی رفتی برای اینکه علت رفتن تو بود که آب روی تو باز در هر آتش دید به یک کرشمه که نرگس به خود پروچی کرد سری به چشم تو صد فتنه در جهان هم. عرض کنم که نرگس رو که دوستان همه دیدن و اینکه که تشبیه به چشم می‌کنن نرگس چند جوره اینجا صورای متعدد داره که شاید طرفای ما نبوده و حتماً در شعر ما نیامده یک نرگس چهلادس یه که نرگس مسکینه و من الان به یادم نیست ولی یکی از این نرگست ها هست که وسطش سیاهه و چشم رو به او تشمیم کنم، طبیعی است گلی که وسطش چیز زرد، کاسه زرد هست یعنی چشمش چشم رو کرد. او همون است که میگه رسید موسم آن کس طرف چون نرگس من نه نهد به پا هر که شش درم ده. اونجا اون قده هست و اون گل هم درمه، یعنی که شش دام بعد، عرض کنم که نرگست شهلا نرگستیست که وسته سیاهه و اون رو به چش پشمی میکنن و فری به چشمت و صدقه در جهان به یک کرشمه کرشمه از کردن معنی لوندی و معنی دلبلی و ارز که اون چیزیست که حالایش اش میگیم عشبه عشبه معنی فری به یک کرشمه که نرگس به خود دروشی کرد اینجا خود دروشی هم بار محنایی بد اون چه مثل امروز هست نداشت و بروشی در حقیقت به خود نماری. یعنی فروختن حسن خودش در بازار جلد هیچ معنی ارزش ندید رو نده. به یک کرشمه که نرگس به خود بروشی کرد فری به چشم تو صدتت در در جهانم ولی جلو اون جلوگری اون نرگس یعنی به کلی اصلا سیاست نرگس رو خرد کرد فری به چشم تو کلک اون کند تو ز شرم آن که به روگ تا نسبتش کردن سمند به دست سوا خاک در دهانه گل سمند به اصطلاح رنگ لطیف زیدواری داره که میگه به رنگ چهره نسبت میتزم میکردن و سمند روگ و سمند و اینا فراغون به شهر پارس. یا گرده های وسطش و اون پرچم و گردن وسطشون حاللت های درآماده وسط گ هوا دیگه در کل می کهدهره چیزی که داره شبیه خاکنگنگ کاکی داره من جزیات بر گیاه شناسی هرچ م موین هم میده شهر هنگار از اون کتاب‌های های گیاه شناسی نام میده و حس میشه ببینیم. برجهت این مسئله که که س به دست خاک در دهان، انداختن کردن و خاک بردهان بودن کنایه از نهایت درجه پشیمان است. و شاید یکی از اولین جاهایی که این, این کلمه این صورت در مدارک ادبی ما استعمال شده در داستان رستان سهراخ. در داستان رستان سهراخ بسید از سهراخ بلند با لاشکر توران و اون دژ سپید رو گرفته بود و حجی رو گرفته بود و گردافریت باهاش کرده بود و خبر هم به کابوس شایدان که یه های دمانی از توران داریم و کابوس که مرد خیلی تونمزا جنابوده گیب رو میفرسته و میگه که به رستم میگه که که گر گلو سرداری اکنون مشکلی سرشون رو سرشور می‌شستن خود من یادم که سال شیراز اول بار، سال <تصفيق> دوستان هفت کجا حالا که رفتم همون کارگر همه همه با سر با کنار میشونیم یا با گل میشونیم یا با صابون. بعد دوستان توضیح درم این گل،, گل سرشوی بهش میگن و این چربی رو جز میکن چربی رو می به و این همون گلیست که زنا, زنا که نه مردم هم میخوردن بعد این مردم هم میخوردن، زنا هم در موقع دیار میخوردن و مثالی هست که میگن که شنگلی زن گل میخوره و نه هر گلی بله قدیمی آداز زشت گل خوردن همونده قد از اینکه سیگار اینا راهید بشه مرد و زن این که داشتن گل میخوردن و این افتدال عظیم در دستگاه گوارش اینا حدید میاخورد بشهد که از گل خوششون از بزرگانی که این کار می کرده معمون خلیفه عباسی مدت مادی عادت به گل خوردن داشته و نمیتونسته ترک بکنه تا بلاخره <تصفيق> چیز میگه که این از میگه یا امیر المؤمن اینه عظمتان من عظمات برو یکی از اون تصمیه های شاهانه کداست؟ مهمون میگه حالا در داستان رستان سهرام میگه گل به سرداری نشون یعنی فورا داماد رستمی که نزدیکترین این فهلوانم بوده به رستم میرسنش به پیستان و میرسه اونجا رستم خون دامادش بوده میگه خوه حالا پیادش رو بیشه اونم که اعتماد تشته به خودش این هم بیاره بیشه این دوایی یه روزو دو روزو سه روزو و هرچی دیگه این پان پان میکرده و اینا رستم دست دست میکرده در خلاه باید سه روز دیگه که کابوس من بوده که درستی اتفاقیه. با... خواهش میکنم بشید بسید همشن میرن از در که میرسن به گیب میتوه و دنبالشن به رستم و شروع میکنه به اینکه تو اصلا چی خیلی مفصل و به توست میگه بگید به وقت زنده دارشون بزن خیلی ما از رستم دار که میگه رستم زد توی سینه توست که رنگ از سرش در پت بزن و باید که تو خشما فرم شاکا بوستی چرا دست آزد من؟ توسکی است. من این تختم همین زینه اسبم است و تاجم هم و بلند آسمان هم باره با هم و زمین هم. من به کسی اترجم میذاری میره میذاری میره و صورا هم بوده کابوس هم بد کرده بوده باید که چکار بکنه، چه بکنه، چه نکنه به لخره و از مدتی میگن او درز پیر بوده و ارز که در زید پدر دامادشم بوده و میره، میره سراغ سید و هر کاری میکنه رستم میگه نه برو جوابشون بده کسی که اونجوری هرز میزنه خودش برو جوابشون حتی چی میکنه بالاخره اون چیز کلک اصلی رو میزنه یعنی انگوش میزنه رگ خواب رستم. میگه ولی پهلاوان این هست که ممکنه بعضی مردمون بگو بگن رستم ترسید از این که بیاد با این اهلوانتاز جنگ بیده که میگه رستم میاد وقتی رستم میاد بعد صداخت زمینه رو قبلا آماده کرده بودن که کابوس هم معذرت خواهی بکنه اون چه, او چه بکنه بعد همونجا کابوس وقتی که رستم میاد ضمن بیت های مختلف که میگه میگه پشیمان شدم خاک در این اولین جا و قدید این تنین رو خود دیدم در یه چنین موردی که پیداست در یه مورد حیاتی به کلی و از سر اصطلاح چه میدونم خشم بی جای فادشاه یک مسئلهی خیلی چیز شده دید. بعد که میخواد نهایت عوض خایی رو بکنم میدید که پشیمان شدم خاکم اندردن و این هیچ وقت یادی که که کاغوس نمیره که یه همچین خاری رو کشیده و تلافیش هم سر قصه نوشدارو در میاره. این خودش تنهاست من پدرم در مندر رو من که ها سورا من چی میشه نمی این سمن به دست سبا خاک در دهان انداخت شرم آن که به بکیت نسبتش کردن سمن به دست سبا خاک در دهان انداخت این یعنی کمال شرمندگی و پشیمانی رو از این داشت که مردامونم. خودش که حدی نزده برد, برد که از شرم اینکه مردم مردم اه... گل رو به روی تا نسبت دادن او به دست سبا خاک انداختا سمن به دست سبا خاک در دهان انداخت بعد باید بیت باشه که توی توی نسخه فرمان خالدی نیست به بعض داق چمند دوش ما. بگذشتم تو از دهام به تو هم خونچه در گمان بنافشه طرفه مفضول به خود گره نیزد سواه قاویت زرکه تو در این دوتا ظاهرا خوشتر همه و بیت هایی که دو بیت یا سه بیت یا گاهی چهار بیت خوشتر هم متصله به هم و باید یک جا کنده و که معلوم میشه اینو این عبیات رو بینگرم یعنی مرتبط و بزرگترینش و قشنگترینش باید من سه حدیثی چهار که همه روی اون قضاد سختی اگر من ده آف ساختنم که توستیک و ارادت هزار چند است بعد میگه که جماعتی ندامند هزر و خامی که میام دوا و انسان است گمان برند که در باغ روز سهدی را نظر به سیر زنختان و نار است مرا هراین خاموش بودن و بیتر که جهل پیش خیردمند عذر نادان است. و ما اوبره او نفسی و ما که هرچند نفت کنند از بشر در این کام میگه با اینکه من بهتر جواب ندم اینا اما خیلی هم خودم رو تبرایه نمی کنم برای اینکه بشر هرچی بیتی ازش اشت برد و این چهار از محبوب المهانی خوش همه که یا هم دوتا یه خیلی محروف هم. این چیز که توی این نیست که به فراقی دانند توی با سرچنده است یه قسم به جامت و خوردن تدیر عزت نیست به خاک پ دوگنده هست که با شکستن پیمان و برگرفتن دل هنوز دیده به دیده ها را آروجی نمید اینا موقع با ما نمه به بعض نگاه چمن دوش مست بگذشتم چو از دهان تو هم کنچه در گمانند آخ اونجا دیدم که به نفشه طرفه یه خود گره نیزد سباه کافیت زورت تو در میانم کنم که مفتول یعنی فتیله فتیله و برای زلف زلفو که رشت رشته رشته گاه های رشته های ریز ریز میباختن میگفتن مفتول عجب از آن مال, مال سعده بود. عجب از آن سر زلف مهمبر مفتول که در کناه تو و چرا جراقه و بعد این مفتول هم که به جای سیم و کاب رو اینا رو میگن مفتول اینم یعنی نازوی که رشته رشته در فستق بیانان شاید اولش اونایی بوده است که چند تا رشته نازک در یه چیز بوده اون رو می‌گرفتن مخلوط که الان برای تصویرای عکس این مسی ممنون رشته‌های نازکی که تو هم تایده است بود شد بعد بنفشه تبری رو بنفشه ایرانی رو اگر ملاحظه فرموده باشید یه پایه نسبتاً بلندی داره باعث 10 تا 12 سانتی‌متر نازک اون رو ظلف تشکیل می‌دن و بعد سرش گل پچکیست که حالت شرمگین داریم سرش انداخته پایین داریم. و بنافشه رو همجور به شرمگینی و سر پایین انداختن و امثال اینا اغلب کردن و همچنین طره بنافشه و گیزوی معشوب رو به و موی معشوب رو بنافشه زورت اینا زیاد کردن بعد میگه من در بعض چمن رد شدم که بس بودم و دوش و دوش, دوش به دی به معنی و دیروز دی یعنی 24 ساعت دوش یعنی دیروز هم که دیروز يعني دیروز يعني داشت و پرندوش داریم پرندوش یعنی دوش و پرندوش دوتا پرندوش کمتر از دوش الان که دوش آن دل که مینوفتم با آقسته هشت ببرد سر پوش وان سیر که دوش تا کمر بود امشب بگذاشت خواهد از دوش دوش دوخون این دوش که هم که میگیرین این فرنگی هست ارز کنم که به بعضگاه چمن دوش مست گذشتم چرا؟ چو از دهان تو هم گنچه در گمان انداخت گنچه وقتی بوانه شدی نگش تیزه هستم مثل پیکان می و دهن معشوق رو هم دهن تنگ اون خیلی گویا با زیاد و خیلی هست گفت از از حسات ها آمد به تنگ جا کام، تنگ، دستان، کی زان دهن برای دو تا لغت تنگ آورده که قطعا نازر دهانه ولی خود دهان رو نگفته به تنگی نگفته که خوانده پس حسلات دهان آمد به تنگ جا خود کام، تنگ، دستان، کیک زن دهن برای یه ده شاعر ناکامی هم گفته که دیدم دهن جو رفتم از اون دیدی که به هیچ مرده بودن یکی دهن معشور بگه تنگی و افتحاق تنگ شیری تن. مگر مهر سلیمان که نقش خواب همه جهان میده نگیم دا. دهان باید تنگ بشه و کچک و خونچم به تندلی و کوچکی و نوی که پیز کاملا میگه وقتی که خونچه مرا در گوان انداد که در حقیقت تک کردم که ببینم که این کچکتری ها دهنه من رفتم اونجا که بنافشه مشغول گره زدن انطوره مخبول خودش بود سبا حقایت زولفتو در میانند داد یعنی باهاوردن حقایت روی بنافشه کم با بنافشه خجالت و از گاه چمن دوش ما خود تو از ده چه در کون انداخت بنافشه ترقه به خود گره می زد قابلیت تو در که سباه داریم و شمال داریم که معمولاً رو برای خار شمال پیداست باری که از جانب شمال اولا این, این, این اعتبارات مال به همون نواحی شیراز و ایناست وادهای هر جایی مربوط به خودش هر کدوم از یه جهتی میاد و چیز فرق میکنه ولی اون که هست یکی شمال که حافظ در بس شیراز، خوش آن و بس به خداوند نگه دار از زبالش یکه میان جعفرآباد آباد و مسلاح شما. جای دیگر هم داره بجز سبا و شمالم هم نمیشه شمال بادیست که از شمال میاد و باد فرهنگیز بوده در اون روزگار سبا هم گفتن که هر نوع باد آهسته ملایمی رو میگن و در زمد بادی که از شرق به قرم یک باد دیگر هم هست که گاهی اسمش آمده دبور که از جنوب به شمال می‌وزه به باد فری یعنی بادی که اگر یاد شده باشه شعر صورت آفتزا و فری ببخشید هم دبور دبور <تصفح> ارز کنم که بنافش طره وستود به خود گره میزد سباه حکامیت زلطه تو میان داخل این, این مسئله خیلی آهسته رو بودن و کمسه رو بودن مکرر در شعر اشاره شده یکی از شعبات یاد میکنم براتون <تصفح> اون غزلی که میگه روزگاری شد که در میخانه خدمت میکنن در لباس فرد کار احلی دولت میکنم. اونجا میگه با سبا با سبا افتان و خیزان میردم تا دور و رفیقان ره یعنی از همون سبا استنداد همت میکنم یعنی سبا به پای منی که افتان و خیزان میردم میان. یعنی چیزی یا توی اون قذل دیگر از این خوش رقم که بر گل رخصاق میکشی خط بر صحیفه گل برزار میکشی کاهل ربی چو باد سبا را به بوی زول هر دم به قید سلسله در کار میکشی گفتی سر تو بسته که ماس زن سهل است اگر زن. خیلی هستن همیسی که در پیشوزی او در کنون به آقونه ی در نصیبه از خود نمیتوانم دارم به معنی پرهیز ندیدمی، یعنی اینجا برای یه دو کلمه ذکر خیلی از مرحوم دستور زمان پارسی شده باشه من این دو سی کلمه در یه هایی که آخر فعل در میاد اینجا عرض میکنم که هفت جور یه آخر فعل درد اولش یه زمیر زمیر دوم شخص مفرد رفتم رفتی میرم،, میرم یه زمیر دو دوم که 90 درصد یه های آخر بلم همینه دو ممیش جای استمراریه من از برعمه مطرب ندیدم این زین پیش یعنی من از برعمه مطرب نمیدیدم دیدم. جای نمیدیدم دیدم، جای می که ادات استمرار هست اول فعل در می یا هم گاهی یه در آخر فعل در رفتم این گفتم ای. یعنی ای رفتم ای. به باز از باز کس، کسرت استعمال بعد از اون زمین دومشت ثومی و چهارمی با هم یا شرطی و مطیبی است جمله های شرطی و جزای شرطی میدونید که جمله شرطی حتما دوتا جمله است با هم یه حرف شرط هرف شرط از ذر معنی هرف شرطه از ذر دستور حرف ربط این صورت جمله رو هم مربوط کنه میگیم اگر آفتاب براید رو زد او زد یه جمله است اگر آفتاب براید یه جمله است او اصلاح او حرف مربوط کنه حرف ربطه ولی معنی شرطه این اون جمله اول رو میکن شرط دوبامی رو میکن جزای شرط تابقه بر این جمله شرطی و جزایی رو که می آخر فعلای جمله شرطی و جمله جزایی هر دو یه در می آوردن میگه گه بگفتمی که با ها چیز که بایش را اگر حیات گرات جاودان بودی یعنی دوست پس پیش شدی یعنی سیاه جمله عبارت درستش به صورت مستقیمش به ضرورت چه پسویش شده بوده اگر حیات گران مای جابدان بودی بگفتم این که پاک پایش کباهایی داره اون جمله عوضی هایی که هست دوش بودن یا های شرطی دوبامی این یا جزای شرط یا یا های متیعی برای اینکه به پیروبی از جمله شرطی یا های شرطی و پنجم و شیشم بیای تمنی و ترجیه تمنی و ترجیه هر دو یکیه یعنی هر دو آرزوی آدمید آرزویست که میکنه آدم عداد تمنی و ترجیه هم ای کاش یا لیتح و امزال ایناست کاش این تو بود، تو بود تمانی تمنی تمنی <تصفح> آرزوی بر نیامدنی مثل اینکه بنده بگم ای کاش جفون بشن. نمیشه اونی میگن تمنی آرزوی برآمدنی میگن مثل این که ای کاش مثلا فرض کن که چه میدونم جایی آرزوی بدم تمنی و ترجیب. اونم اونم چیز داره میگه کاشان به خشم رفته ما سعدین کاشان به خشم رفته ما آشتی کنن باز آمدین به دیده مشتاق بردارم خود کاشکی قیمت انفاس عداد نه اون کاش و کاشکی اینکه اون یش اصلا یه دنبال فیل نیست اصلا مورد بحث ما مایه های آخر فیل نیست کاشکی قیمت انفاس بدانندی خب تا دمی چند که منده است خنیمت رو مرد بدانندی یا یه یا یه تمنیه برای این نمیدونند آدمی ذات قیمت انفاس رو نمیدونه دارد که به نیفته نمید ارز کنم که یای یه تمامین ترچی بلاخره هفتم یای یا گزارش خواب. در ادب فارس مرسوم است که وقتی شاعری یا نویسندهی خوابی رو تعریف میکنه خیرهایی که در شرح واقعاتی که در روحیاتی که میاره اینا میهده دا. میگه فردوسی میگه چنین تو گوینده حالا اینجا خواب نیده چنین دید گوینده یک شب خواب از اینجا میرد که یک جام میداشتی داشتی چون گلا دقیقی ز جایی پدید آمدی بران جامعه می داستانها زدی فردوسی آواز دادی که می مخور جز با آیین کامل می نوشم که نیاز بودنش نه هفته است و خوش وقت نیست برای اینکه شما گرفتار نیستی بیشتر به همه یک دونه غزل حافظ هست که هر هفته یه این جور داره من الان غزل می خونم دو دوستان حفظ کنه از این راحتر که <تصفيق> دیدم به خواب دوش که ماهی برام گزارش خواب دیدم به خواب دوش که ماهی برا که از عکس روی اوش شب به هجران سر آمدی رفقات لازم نیست اینه بنویسن بعدم هم رو پیدا کنم. فقط مطلعش رو یادداشت داشت بفرمی من تو نسخه خورت پیدا میکنم دیگه نسخه هم که هم اختلاف داره اینجا غذانی چهارسد سیه ولی فایده نداره بردی فایده نداره که یاش آخرش از خوا یا چه ای عاشق چه بعد هر مافی جنب رو بعدم این غزل اصلا به خاطر بسوید بعدم می فنید دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدی که از عکس رویهو شب هجران سرامدی گزارش خواب تعبیر رفتو یار سفر کرده میرسن یه بیدار تو بیداریم ای کاش هر چه زودتر از درد درا یای ترجیعتی قصص درجی با اینا از رجات رجات ز کرش به خیر ساقی فرخوانده فابل من که از در مدام با قدح و ساقرا مجد خوش بودی آره به خواب دیدی دیالگی دی دی تا یاد صحبتش سوی ما رهبر آمدید یا شردی و موسیقی هر قید فیض ازل به زور و زر عرب آمدی به دست آب خزر نصیب اسکندر آمدید آن آه یاد با که از بامودر مرا هردم یا میار خط دل برآمدی که یافتی رقیب تو چندین مجاور زور مظلومی عرب شوید به درده برآمدی ولی این آخری شرطیه اولی مدیه برای که چند تو جزا جاش پس پیش بیشت شده اون که اول مدن خامان ره نرفته دامن در یا دلی بشود دلیری که این کدو میه خب چه دامن سر دریا بدی به جو دلیری سرامتی مش در یه اخرین پیچ جو یه نویش شدی. کلک زده آجه اینه قایدتاً نهود بیا ولی بلد این کارو نمی خیلی خیلی از این بندبازی ها داره که یک غزل داره سبا تا نکهت آن گرف مش بو داری داری ردید به یادگار به مامی که بوی او داری دلم که گوهر از لارهش به در روز توان به دست تو دادن گرش نکو داری آخر که نمیخوام بخونم وقت کنه بعد توش میگه به سرکشی که خود سر سر وجود با مناز که گر به او رسی از شرم سر فرود آری خامان کو آنکو آنکو ترا به سنگ دلی کرد رهنمون ای کاشکی که پاش به سنگی برآمدی جای تمنین گردیگری به شیوه حافظ زدیرقم مقبول طرف شاه هوندفر برامدیم نه خیلی گردیگری به دیگری گردی این غزل تمام چیزها داره و دوستان اگر مایل باشن که همه شهاید بوده این مونه ما بله همه, همه کلک همه کلک همینه هم اینه میشه خونده هم اونم میشه خون قاعده اصلیش میگه فرود آری ولی فرود داری هم که صورت بعیدتر شد ایهام دیگه صورت بعیدتر شد مورد نظرش بوده یعنی اینو ام دن به کار برده یعنی بعضی ظرا میومترب ندیدتم هوا و یه مخبچگانم در این نوعان انداخت عرض کردم که هوا به معنی عشق و هم به معنی می دعایی کنید هوا یه مخبچگانم در این نوعان انداخت این نوعان به نومه یه مدرب یا به تعبیر یه جمع درسینم بشمیده لفوناش لف مرتبان را داند که دو لفظ آورند دو دو معنی لفظ اول معنی اول، لفظ ثانی دو معنی ثانی لفظ، لفظ یعنی پیچیدن لفاف هستند لفظ یعنی پیچیدن نشت یعنی گستردن و نمونهی که همین دوستان بعد حفظ داشته باشند چون سن ناموشالبه نیست هستی کتاب اقتدایی به روز نوردان یل عرجمن مال ترکوسی که من تو شاهنامای جدید نمیدم روز نورد آنگل ارجمن به شمشیر و خنجر به و کمن برید و درید و شکست و ببست الان را سر و سینه و است. یعنی به شمشیر برید سر را به خنجر درید الاخر. اینوش میگه لفتونشید. بسید کردن من برای اینکه سیاست تو ختم بشه نمیدونم، ما لعدریه اما برای که سیاست تو ختم بشه واسه دیه لحبانهش مخونم هشتاست <تصفيق> میگه سال، فال، مال، حال، اصل، و تخت و بخت، هشتا باشد در کامگاری بر مراد و بردبان سال خوردم، فال نید. وافل حال خوش اصل ثابت نسل با تخت عالی بخشام خیر باعزیست ولی تو دیگان بذا شده از ظاهرا علت این چیزاتی که مسئول که از مسئول به سرد کهی و تو قیم ترین خ آاف از ش که آده ظاهرم به این دلیل بوده که خارج از اینا خوش اودهره خط خودش نوشته و اینا مونده و. و من اگه خودم این بلا به سرم نایمده بود، این نکتر را در نمی آفدم. علت اینکه این کار کردم این بود که دفتری دست دستان افتاد، مقدار خط به و من فکر کردم روی عجله او جوونم بودم، وقت یه شعری بود ای به درگاه هایتون یه همه، تو، کارسازه همه. چه اوچه گلروخان، مزهر جمال تو همزین، سبب می نازم. حطب خاطر ایرج ما مردوشو نوشت یه فقیدی از افسانقات خراسان نوشت رو این چه واضی کتاب تحصی کردن اینکه مال امیر چیه دین جقطایی تو مطلع کوسا ما هست بعدش اینو دادا نداشت دیگه برداشتیم چه بلام نوشتیم نوشتیم که آها ببخشید اینجوری شده و علتش این بودی که من اینو به خط ایرج دیدم و این که قصیده مسعود تنم زرنج فراخوان دلم ز اندوه بیگهت همین نیاساقیه تنم ز رنج فراوان همین بفرساقیه چه او چه قواغ بخاق رو حسرت چون برشود به بام دلم ز دیدگاه رو هم بارام را خیلی شعر بلنده در جیه ولی آهنگش میگه مال آفظ نیست دیگه و دست کور بدیم از مال مسود سالم است، دیوان محسود سالم هست و هیچ وقت از دیوان شاعر مشهورتری تو دیوان شاهر غیر مشهورتری نمیره. برای اینکه دیوان شاهر مشهورتر خواستار و خریدار داره، بابا میاد که من یه دیوان کامل درست کردم، نمیم. چه کردم؟ علات اینکه غزل سلمان صابجی و ناصر بخاری و اون جون که دیوان حافظ برای این بود که این خاجه‌های های و اینا رو کم سواد می که ارادتم می گفتم کلیات حجتی خواجه حافظ خواج اول یوم بخدا سلطان بون ما رو همه رو سلمانش میخوان حافظ جان ناصبش میخوان حافظ میشه عدا له ولی شعر حافظی که نمی ولی تو دیوان سلمان ولی دیوان سلمان خریدار نداره ما چی بکنیم که دیوانه نیست اینی که شعر حافظ دیوان مسعود صد نمیره ولی شعر مسعود صد میت دیوان حافظ علت این به گوانبنده این بود است که گفتم چون خودم به سرم اومده اون روزهایی که دیوان حافظ جمع کردن یک ای کسانی اینا رو به خط خاجی پیدا کردن نسخه‌های خیلی قدیمی نسخه 813 و 811 اینا هست. مرحوم خانلری اونجوری توضیح داده تو و بله گفت داشتم خیلی مالی واسه حرف ندید. باز دوسا. اینا علت این، اینه این شعر موزیه تو نسخه مرحوم قزوینی هست همین نسخه دست شما تو نظر از تو قطعاتشون هست. از تو اکثر همه جا. هست. تو قدیمی هست. و گویا گویه و همین داری راه بدی کرد اینو یکی بهش میگن لفنش یکی هم بهش میگن جمع و تقسیم. جمع و تقسیم هم همین که اول جمع میاد سار و پار و مار و آر و اصلا هست و بعد، بعد تقسیم میشه سال و خوردن فال و مال با فرید من از ورحمه و مطرب ندیگ دمیزیم پیش هوای مقبچگامم درم این رو آن انداخت کنون آب مه لعب قرقه بیش روگم نصیبه ازل از خود نمیتوانه اولا اون نصیبه ازل از خود نمیتوانه انداخت باز تنزه یعنی ها میگه چه کنیم ما بعد برخار شدیم اما مه لعب ارز کنم که شراب رو حتی میاندازن بنده ننداختن در عمران خواهد تو باشی خواهدام قدیدم هم وقتی همید که میاندازن این انگوره دیگه انگور از و هم میزنن و پشار میتنن و خورتش رو آشخالهش در میرن و خورتش رو مقادیر زیادی از این مواد ارگانیک مواد عالی این انگور این شراب میمونه بعضیش به صورت ذرات بسیار بسیار ریست که حالت کوللوئید داره و جز به ماهای متوالی بلکه گاهی به سال اینا تانشیم نمیشه یعنی یه روز طور روز دارو شما روز تانشیمشون نیست البته در کارخانه‌های شربت‌سازی اینا رو به خوبه گریز از مرکز ماشینایی که سانتریفیوژ بهش میگن اونجا اینا رو میگیرن یعنی به چهجای مکانیک و تکنولوژی داشت ولی وقتی این نبوده وقت بزارن اینو بعد این جلوش شیمیایی تا رفته رفته از سر شروع میکنه مقدار کمیش این تاریش رفت میشه به طور که یه ذره از سرخوم سر بعد از 6 شیش ماهی برداری که بکنی مثل این شرابای صاف شده که هست اون وقت تار رو و عقیق تشکیه من اینکه عقیق حاجب اماورا هست نور ازش درد